دروغدار نادرستی نظریهای نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا با سلام قسمت 22 برنامه برابری رو در خدمت شنوندگان عزیز هستیم در واخر قسمت 21 بنده مبحث بسیار حساس آلو ایلمنت رو شروع کردم ارز کردم که آلو ایلمنت در واقع عنصر آلو ایلمنت زیر ای از بخش چند ریختی ژن انسانه که برای صفت ظاهری رونویسی نمی کنه و می حتی پس از میلیون ها نسل در ژن باقی بمونه این نوع جن خب مبانا تو پستانداران هم هست حتی در عصر خزندگان هم این جن بوده یه ژنی هستش که ظاهرا از همون اولی که در واقع موجوداتی که دارای حرکت بودن دارای حرکت و دارای سرعت بودن چنین ژنی در واقع تو مغزونها بوده و هست و ظاهرا در میلیون ها نسل در از انسان هم این تغییر نخواهد چون تا به حال تغییر به نکرده در موجودات دیگه هم تغییر پیدا نکرده و این هم تغییر پیدا نمی‌کنه سر از طریق همین عنصر و با آزمایشاتی که روی این عنصر انجام دادن به این نتایج در واقع رسیدن از کنم حضورتون که از کنم که حتی پس از میلیون ها نسل در ژن باقی میمونه در نتیجه اگه دو نفر حتی با نشانهای ظاهری متفاوت مثل رنگ پوست چه سفید و سیاه دارا یک عنصر آلو المنت باشند میشه نتیجه گرفت که این دو نفر از یک پیشینه ژنتیکی برخوردارن یا به زبان ساده تر جد مشترک دارند یعنی در واقع نه اینکه آلو المنت در تمام موجوداتی که دارای حرکت هستند تو مغزشون هست این منظوری نیست آلو المنت هایی هستند تو برخی موجودات تو برخی حتی انسان ها من شما تو مغزمون. یعنی با رمزنگاری و همچنین آزمایش روی اونها راحت میشه تشخیص داد که اینها جد مشترک دارن یا ندارن خب دانشمندان دانشگاه های یوتا و لویزیانا اومده یه تحقیقی حدود دهلا پونزه ساله رو شروع کردن صد انصر مختلف آلو رو بر روی پونسد و شست و پنج نمونه انسانی متولد در شمال آفریقا، آسیا و اروپا انجام دادند و در پایان چیکار کردند؟ چهار دسته ژنتیکی رسیدند می‌بینید از شمال آفریقا، آسیا و اروپا که الان در واقع جمعیت‌های قومی بسیار زیادی که الان بهشون میگن نژاد نمیدونم چینی نژاد آریایی عرب تا سامی قبطی ها انواع اقسام که اسمشون گذاشتن قومیت و نمیدونم فلان و اینا به صورت رندوم 565 نفر رو انتخاب میکنن و این آزمایش رو انجام میدن ولی بعد از اینکه این آزمایش رو انجام میدن روی 565 نفر به چهار دسته ژنتیکی میرسن حالا چطور در پایان به چهار دسته مختلف ژنتیکی هستند که هیچ کدام به طبقه بندی نژادیش مربوط نمیشد هیچ کدوم از این ها به طبقه هم. یعنی مثلا از این 560 تا 10 تا عرب مثلا اگه بود هیچ وقت این عرب ها تو یه دسته جنتیکی خاصی نبودن مثلا از عرب ها دوتاشون توی یه دسته یک بود دوتاشون دسته دو بود دو دسته سه بود دسته چهار بود عرب چهار دسته بوده یعنی اینجا یعنی در واقع اینجا ما میتونیم بگیم که از اینجا در واقع میشه اون بحث نجاد رو در واقع از الان پتش رو ریخت همچنین نتیجه گرفته شد تو این حاصل این نتایج که دست کم بررسی 60 عنصر آلو الیمنت نیاز است تا با 90 درصد دقت دو نمونه رو به ژن مبدع خودش مرتبط بکنه برای 100 درصد دقت در نتیجه بررسی 100 عنصر آلو الیمنت لازم بود یه تحقیق دیگری هم صورت گرفت توسط دانشگاه استنفورد با در نظر دقیقا با همین مدل یعنی بر اساس در نظر گرفتن 100 تا عنصر عنصر آلو ژنهایی که در واقع از نژادهای گکو انتخاب شده بودند با و هفتاد و 375 بخش کوتاه تکراری کوتاه تکراری چند ریخت ژنتیکی که بهش میگن میکرو ساتلایت اس یا آر. میکرو آر. بر روی اینجا روی بیش از هزار تا انسان انجام میدن از پنجاه و دو دسته نژادی انجام میشه این تحقیق جدیدترین تحقیق. مال سال 2014 هستش اواخر سال 2014 هستش که من تازه ترجمهش کردم از یک مقاله ای در مجله ساینس که تازه در واقع از اون حالت چیزش در اومده و توی دو هفته اخیر هم ترجمه بعد از عیده نوروز در واقع ترجمه. ترجمه شد میان روی بیش از هزار نمونه انسانی از 52 دسته نژادی مختلف از افریقا، آسیا، اروپا، آمریکای مرکزی و جنوبی، مدیترانه و خاورمیانه انجام میشه. این تقریبا از تمام دسته های جمعیتی که در کره زمین زندگی میکنه که کنه 52 تا نجات انجام میشه. بانک مقایسه داده ها مشخص شد که گونه انسانی در 5 دسته بزرگ قرار داره. اون یکی چهار تا شد این این یکی 5 و هیچ کنان اینجا هیچ کدوم به نجات نداشت یعنی مثلا یه عرب تو هر پنجتا بوده یه ترک از هر مثلا, مثلا از کشور ترکیر میگه که 13 نفر انتخاب شد نشد که این 13 تا تو یکی قرار تو هر پنجتا از این 13 تا بود و چه چجوری انتخاب شد مشخص شد که گونه انسانی در پنج دسته بزرگ قرار میگیره که در طول تاریخ با حسارهای طبیعت از هم جدا شدن آفریقا، اروپا غرب قفقاز، آسیا غرب هیمالیا شرق هیمالیا تا گینه بیسا بومیان آمریکا که در واقع از تو همین پنج گروه بودن و به صورت در واقع پیچ در پیچ یعنی همشون از جالبه که از بومیان آمریکا هم حتی حداقل روی ستا گونه در واقع جنتیکی که بودن روی ستا گونه یعنی مثلا مثلا تحقیق، تو، توی تحقیق میگه که 35 نفر از بومیان آمریکا از این سخبست های بوم بومیان آمریکا اومدن انتخاب کردن این فکر کردن که میتونستن مثلا حداقل توی یکیشون تمام 35 نفر توی یکیشون باشن بگیره. تو سه تاشونی دار جا گرفتن خب میدونین آی دکتر چرا چنین پیش فرضی داشتن؟ خب چرا؟ چون اینا همون تصوری که ما میگیم الان داروینیسم تونستون پای تفکر غرب رو تشکیل بده یه پای تفکرایی دارن اینا. که اینا همه رو متقن میدونن یعنی دیگه اینا رو اصل میدونن اینا معتقدن که تا روزی بارد. که کریستوف کولوم پاش به امریکا نرسید پایه هیچ احدی به اونجا نرسید هم اونا هم سرخپوس بودن و اینا هم وارد شدن و اونا بومی بودن اینا هم غیر بومی و یکی از سران این قبیله های سرخپوس به نام جیبوه میگه آقا ما دوازده هزار سال اینجا داشتیم زندگی میکردیم مگه ما گم شده بودیم که بیا ما رو پیدا کنین یعنی چی هر اروپا یا اصولا خودشونو مبدا همه چیز میدونن یعنی میگن در سال 1800 و فلان آبشار مثلا چیچیک تو کنیا کشف شد ببخشید پرسش شده مگه اون آبشار گم شده بود کشف بشه پس اونم آدمی که دور روز زندگی میکردن هزاران سال تاشون آبشار میدیدن شما ندیده بودین دیدن. شما ها نه شما مبدا جهان شماهین شما ندیده شما بودین آقا شما پاتون به آمریکا نرسیده بود اینقدر گزارش هست که هم سرخفوست ها به دو سوی اقیانوس اطلس و آرام رفته بودن هم از دو سوی اقیانوس اطلس و آرام به آمریکا رفته بودن گزارش هایی خیلی خیلی جامعی هست که حالا بعد اونگی های کلوم رفت اون اصلا به بحث ما مضبوده میشه که چی شد رفت اما عرض میکنم اینا بگن مثلا ما انتظار داشتیم که ها همه توی گروه قرار بگیرن نه آقا جان شما او همه اختلاط ژنتیکی که پیش از کلم رخ داده بوده ته هزاران سال رو با او آدما در نظر بگیرین بذ کاملا براتون طبیعی میشه که اینا تو چند گروه جا بگیرن. عذ می‌خوام من یاد این حرف این راهور قبیله جیبه افتادم برد. که گفت ما گم شده برد. بودیم نه. شما ما رو پیدا کردید. نه اتفاقا این در واقع نکات جالب اگه گفته بشه میتونه به لطف برد. کلام در واقع اضافه بشه. لذا ما میبینیم که طبق فرمایش شما اینا که انتزاعش تو یک گروه قرار بگیرن چون این عنصر الو المنت یه که در میلیون‌ها نسل باقی می‌مونه. لذا تو اجداد مختلف اینا میتونستن در واقع مشترکاتی داشته باشن با ما میبینیم که حتی مثلا تو یک, دست، تو یک دسته ای که عرب توش هست ترک توش هست سرخبوست توش هست درست لذا اینجا نیای مشترک هم میتونه در واقع قابل فهم باشن اون بشه. پنج گروه مناطق شفه کنم یه بار گفتین گفتین آفریقا و اروپا و قرب من... هیمالیا و من... اه... یه بار میشه بفهمیم میگه که الان عرض میکنم گروه به صورت نسبی هم انتخاب شد یعنی نب... یعنی نشد گند یعنی این 5 تا گروه مطلقاً همشون توی اکثریت به صورت نسبی هایی که میگه اک آفریقا اروپا قرق... قرب قفقاز قفقاز اروپا و قرب قفقاز یه دونه آفریقا به تنهایی اروپا و قرب قفقاز خودش یه دونه دیگه اروپا و قرب قفقاز بعد آسیا قرب هیمالیا یعنی باهم هم دیگه. آسیا و قرب هیمالیا با هم. با هم بعد شرق هیمالیا تا گینه بیسائو گینه نو البته گینه 20 فکر کنم گینه گینه نوئه چون ترجمه که من چیز کردم به احتمالا گینه نوئه این باید پاپوآ گینه نو باشه نزدیک استرالیاست درستی استرالیا گینه نوئه بله بعد از ملنسیا و بومیان و آمریکاست که توی این پنج تا که توی این در واقع گروه‌های جمعیتی اولا بحث نژاد اصلا مطرح نیست انواع اقسام نجاتات در داخل همین هایی که ما فرض کردیم ما فرض کردیم در واقع هستش مثلا الان حتی این نیست شما مثلا تو خود امریکا آری آر امریکا مثلا آنگلوساکسون هست فرانسوی هست راگ هست آلمانی هست شما میبینید دیگه مثلا آقای هنری کیسنجر آلمانیه مثلا با. آقای مثلا کندی مثلا ایرلندی مثلا آقای اوباما مثلا کنیاییه اونجا هم اتفاق بیشترین چون بیشتر رندم انتخاب شده بود. یه که انتخاب نشده بود. اونجا ما ببینیم بیشترین مثلا کسرت و پلورالیسم در واقع نژادی در اونجا وجود داره. یه مثال میذارم که به مثال غرب هیمالیا رو به هند مثلا یعنی های آسیایی فلات ایران و آسیا مرکزی در واقع تبدیل میشونی یکی از چیزا غرب هیمالیا بود دیگه بله بله یه سمت شرق هیمالیا بودین آسیا و غرب هیمالیا با هم بودن حالا غرب هیمالیا رو تقسیم کرده به هند و فلات ایران و آسیا مرکز مرکزی آسیای بله. مرکزی بله ولی یه مشکلی که توی این طبق بندی در واقع به زیرگروه های بیشتر چون هر طبق بندی بخواد زیرگروه که به دنبال خودش داشته دیگه به وجود میاد گوناگونی و تغییرات ژنتیکی تو مناطق مختلفه که در قلمرو استعماری بیشتر از همه بوده این یکی از نتایج در واقع این تحقیق هستش برای مثال تمایز جنوب شبه قاره هند با سایر زیرگروه ها به داده های بیشتری نیاز پیدا میشه پس بیشتر یعنی جمعیت جنوب هند متمایز ترن متب... متنه در واقع چیستر متکثر ترن اون جاهایی که بیشترین حالت استعمار دیده شده مست هستن درست چون جنوب هند بیشتر دراویدین ها هستن بله و یه دلیلی هم که در واقع نویسنده مقاله این میاره میگه که این یه دلیلیه که ژنتیک که منطقه بیشتر مخلوط شده و تنوع که زیادی توی این جور مناطق استعماری به وجود اومده بعد البته بود که حالا با این تفاصیل آیا ما میتونیم بگیم مفهوم عمومی قوم و نژاد در مقایسه با ژنتیک انسان همخانی داره یا نداره؟ از اتاق فرمان میفرمایان که قسمت دوم برنامه هم در واقع رو به پایان هستش و ما بخواییم این بحث رو شروع بکنیم حالا شما با... مباحثی دارید و چون ما قول دادیم که یه داروین و هم نصفی اینها رو تمام بکنیم شما در قسمت گذشته من بازم یه تره بحثی در مورد اون مسئله میکنم. کنم 23 24 تو. بنا شد که اینها رو جمع کنیم و بعد اون دنبالی بعض فرمای شما رو به طور کلی ادامه بدیم بله به امید خدا شنوندگان گرامی قسمت 22 دوم این برنامه اینجا به پایان میرسه شما رو تا آغاز قسمت 23 به خداوند متعار بسید